با درود خدمت بینندگان گرامی و با سپاس از مسئولین و موجیان محترم تلویزیون رنگین کما بخش چهاردهم خاطرات سوی رو زندگانی کسوی رو شروع میکنم در بخش سیزدهم ما به اینجا رسیدیم که کسبی در خوزستان تلگرافی از مرکز دریافت میکنه. تلگرافی سخت در تلگراف می که آقای نیزا سید احمد رئیس عدیه وصول تلگراف به مرکز حرکت نموده و به امور مداخله نکنید خب این یه تلگراف دقیقا تنبیهه میگن آقا در امور رو داخله نکن شما دیگه جزو ادلیه خوزستان نیستید علت این چون این تهلیگرافی گفتم که گزارش نظامیان بود به مرکز که برق علیه کستوی گزارش منفی داده بودن و بدون شک میبخشید و بدون شک وزارت عدلیه هم تحت تاثیر این گزارش یک چون تلگرافی کرده بود ولی ما میدونیم که حدود دو هفته بعد این تلگرافی که من حضورتون از میکنم هفته اردی بهشت به هشت به سلا دست گسته رسیده. حدود دو هفته بعد تلگراف دیگری میبینیم که خیلی خیلی ملایمه تلگراف به این ترتیبه روز 16 اردی بهشت آقای سید احمد رئیس اتحادیه برای شما ماموریت دیگری در نظر گرفته شده است به مرکز حرکت نمایید خب این تغییر لحن تلگراف وزارت عدلیه من در صفحات آینده در سخنان آیندهم در این مورد سخن خواهم گفت که چهبنه شد که ادلیه، در رسم اونا رضاخان رزاخانه که تصمیم میگیره حتی که ای نیست ما میشناسیم رضاخان دکت رزاخان به دستور رزاخان لحن تلگراف وزارت هر دیگه عوض خوده به هر حال روز هیچده اردیبهشت اردی به تلگراف آخرین تلگراف دست گستوی میرسه چهار روز بعد روز 22 اردیبهشت اردی بهشت کسوی حرکت میکنه از سوشتر به سوی تهران خب در خاطراتش نوشته که از ناصری و محمره و بسته و بغداد و خانقین میگذره منده اینا رو گفتنش رو جا اوزدلا لازم ندونستم بر اینکه زندگی شخصی و به هیچ وجه در مسائل امور اجتماعی هم مطرح نیست از شوش تا تهران تا برسیم به تهران خب کسوی میرسه به تهران قبل از اینکه ما خاطرات کسوی رو در تهران ادامه بدیم به گمان من لازم هست که مطالعاتی که در مدت چهارده ماه در خوزستان کسوی انجام گرفته در این باره هم سخن بگیم برای اینکه این مطالعات یکی از پایه زندگانی کسویه پایه‌های های خاطرات یکی از است که بعدها در مملکت ما منابع خیلی مفیدی به دست مردم رسید و از موقعیت آن روز جامعه آگاهی پیدا کردن برحال کسی در این مدت اقامت چهارده ماه خود در خوزستان بهاب درخواست یکی از دوستان نزدیکش حسین کازمزاده تبریزی که معروف به ایران شهر است این شخصیت از دوستان نزدیک تخیضاده هم بود و روز برلنی ها بود درخواست کرد که یک کتابی در مورد قیام شیخ محمد خیابانی بنویسه ما می‌دونیم که کسوی جزو همکاران نزدیک شیخ محمد خیابانی بود و در گذشته یکی دو بخشم در این باره در تاریخ قیام خیابانی از زبان کسوی بیان کردیم بنابراین در این مورد یکی از کارهایی که کسوی در این مدت 14 ماه انجام داد علاوه بر کارهایی که در گذشته گفتم، یکی همین کتاب قیام قیام شیخ محمد خیابانی، احمد کسلی، ویرایش و مقدمه محمد علی همایون قتوزیان حدود 170 صفحه هم حجم داره. بنابراین یکی از کارهای انجام دا کسلی در خوزستان، این کتاب که کتاب منبع تاریخی البته از دید خودش، اونچه که زندگی کرده، اون رو نوشته کسلی. همچنین یک کتاب نوشت به نام حقایقی در مورد زبان اسپرانتو و این کتاب در نشریه الاغات الاراقیه به زبان عربی پخش شد این هم یکی از کارهایی بود کنجاندال که در تاریخ فروردین 1334 هنوز در خوزستان بود پخش شد خب این مطلبیش که ادامه مطالعات کسری بود در خوزستان حالا بر میگردیم ببینیم در تهران چه کار کرد که سری در به محرم سال 1304 به تهران رسید. خودش می که چون محرم فرار رسید و سردار سبح در وزارت جنگ روز خانه می کرد چون این نهادیم که به آنجا رویم و او را در آنجا ببینیم. فردا رفتیم. سردار سبح با برخی از افسران و وزیران روی سکویی نشسته بودند. ما را پذیرفتم سردار سپاه از من احوال پرسی کرد و دیگر سخنی نرفت خب همین که ارشد کردم تلگراف دومی تر بود میبینیم که رفتار رضاخان هم با کسری ملایمه خب وقته زمانی که کسری با نظامیان رضاخان در خوزستان در افتاد بود معلوم است که رضاخان عصبانی بوده از دست کسری به که گزارشی که داده بودند بر علیه کسوی بود ولی در این مدت در این تاریخ در همین خوزستان بقایه اتفاق افتاده بود که در مرکز نسبت به کسوی متوجه شده بودند که کسوی نمیتونسته مخالف نظامیان و مخالف مملکت اقدام بکنه واقعی که تو اتفاق افتاده بود به شهر بود خودش می نویسه می نویسد که نصرت دوله وزیر ادلیه شده بود و روزی مرا خواسته بود رفتم گفت از خوزستان شکایت های بسیار رسیده میگویند رئیس عدلیه که به جای شما رفته علنی پول میگیرد بعضی از را نیز نوشته که پول میگیرند مگر این اعضا در زمان شما نبودند کسایی که گفتم با بودن من که نتوانستندی رشت بگیرند و یا ناراستی کنند وزیر گفت در این کاغذها در کاغذ ها درخواست کردند که باز شما را بفرستیم ما شما را بفرستیم میگه گفتم خود من هم نخواهم رفت خب این علت ملایم شدن رفتار رضاخان و نیز وزارت ادلیه دقیقا همینجاست که جانشین کرسوی شروع کرده رشوه گرفتن و در نتیجه به فساد کشیده تمام دستگاه ادلیه خوزستان را و این گزارش که به تهران رسیده مسئولین مملکتی نسبت به کرسوی ارادت پیدا کردند باز کسروی پس از برگشتن از خوزستان بیکار میشه چرا بیکار میشه؟ میگه که من تصمیم گرفته بودم که دیگر به شهرستان ها نروم و در تهران اگر کار داشتن کار کنم این میرسه به تهران در تهران آماده نیست کاری برای کسروی وجود نداره که بتونه در تهران کار بکنه و به همین دلیل بیکار میشه <تصفيق> میدانیم کسروی وقتی بیکار میشد دو تا مطلب برایش به صلاح روی میداد یکی از مطالبین بود که بارها گفتم که کسی که در آن تاریخ از به صلاح کارمند اداره بود و بیکار میشد بدون شک پولی دریافت نمیکرد و وقتی هم که پولی دریافت نمیکرد درآمدی نداشت اینک کسوی صاحب زن و شده زندگی نسبتا مفصلی داره بیکار شده معیشتش هم مشکل میگذره این یک مسئله بود که کسوی رو اذیت میکرد ولی مطلب دیگه از بیکاری کسوی و با بارها گفتیم وقتی بیکار میشد کسوی از کار بیکار میشد کارهای علمیش رو شروع میکرد پشوخش رو شروع میکرد بنابراین کستری در این بیکاری که در تهران آرزش شد شروع کرد به مطالعاتش یکی از کارهای خیلی خیلی مهمی که در این تاریخ کستری شروع کرد نوشتنش و تمام کرد کتابی بود به نام آذری. یا زبان باستانی آذربایجان من این کتاب رو آوردم برای بینندگان گرامی نشون بدم آذری یا زبان باستان آذربایجان احمد کسلی و این کتاب رو هم میتونیم بگیم حدود 100-156 صفحه هست این کتاب یکی از کتاب های خیلی مهم و سخن برانگیز به اصطلاح است کسایی در این کتاب روشن کرده که زبان قدیمی آزربایجان زبان فارسی بوده با لحجه مخصوصی که لحجه آذری می حالا رو. روشن خواهم کرد اون که در این سخنانم خواهم گفت فقط نظر کستویه و از کتاب کسایی، از همین کتاب اوزار باستانی آذربایجان در حضورتون میگم ابتدا کسانی میگه که چرا این کتاب نوشتم میگه چون ژن ترک ها در کشور عثمانی به قدرت رسیده بودند و پان‌ترکیسم را دنبال میکردند جدالی درباره ترک بودن آذربایجان در بود و من این کتاب را به صورت علمی نوشتم و روشن کردم که آزربایجانیان در گذشته زبانشان فارسی بوده است در این مورد یک مناب... کار کاملا علمی پژوهش علمی خیلی ظریفی انجام داده و به منابعی را... مراجعه کرده و دانه به دانه این مطلب رو روشن کرده کسری استناد کرده به جغرافی نویسان عرب درباره زبان آزربایجان از جمله کتاب ها کتاب المسالک الممالک بوده که ابن حوغل عبالقاسم محمد بغدادی در قرن چهارم و سی و سی یک قماری فوت کرد این شخص نوشته شده از این کتاب سندور داشته ارائه کرده و می نویسد که در داخل این کتاب زبان مردم آذربایجان و زبان مردم بیشتری از ارمنستان فارسی, فارسی و عربی است برخی تیرها نیز در اینجا و آنجا زبانهای دیگری می‌دارند این رو کتاب المسالک و ممالک نوشته برخی تیرها نیز در اینجا و آنجا زبانهای دیگری می‌دارند چنان که مردم ارمنستان به ارمنی و مردم بردعه به ارانی صحبت می کنند ورای رودخانه اراس قسمت شمالی که امروز آزربایجانش مینامند در قدیم اران میگفتند یا قفغازیه قسمت مسلمان نشین قفغازیه میگفتند. مرکز اران هم بردعه بود اشهاره کسدی به همین جاست همچنین این به استناداتش به مسعودی استناد کرده از کتاب اطنبی و شاف. از اون مطلب آورده و نوشته که استانهای آذربایجان و ری و خراسان و سیستان و کرمان و خوزستان همه این شهرها و استانها یک کشور بوده و یک پادشاه داشت و زبانشون هم یکی بوده یعنی زبان آزربایجان در اون تاریخ در باز این تاریخ قرن چارمه هیچیه. این کتاب در سی چه دو چهار نوشته شده یعنی نیمه اول قرن چارمه هچیه قمری در همچنین به کتاب احسن و تقاسیم احسن و تقاسیمو فی فاتل اقالیم نویسنده این کتاب ابو عبدالله بشاری مقدسی هست که آن هم باز همین کتاب هم باز در قرن 4 نوشته شده باز در اینجا استناد کرده میگه کشور ایران هشت بخش دارد و زبان مردم این هشت اقلیم عجمی است و همگی فارسی صحبت می‌کنند همچنین بعدن از کتاب معجم البلدان کتاب های خیلی مطمئن و دقیق اشاره کرده از کتاب معجم البلدان تعلیف یاغوت هموی اوائل خرن هفته در اونجا شد که به اونجا هم اشاره کرده و می نمیسد که ز... مردم آزربایجان نیم زبانی دارن که آزریه نامیده شود و کسی جز از خودشان نفهمد بنابراین تا اینجا تصوید از دید زبان فارسی که با لحظه بوده از دید کسانی باسته کار میکنم و اینا اشاره کرده یعنی در اون تاریخ زبان آذربایجان زبان فارسی با خاصی مید. به دنبال این باز در همین کتاب میخواد میگه که ببینیم این زبان کی عوض شده کی؟, کی به ترکی مبدل شده در این مورد سخن میگه میگه که خصوصاً اس کنم بر اساس مطالعاتی که انجام داده ترکی همراه با سلجوقیان به آذربایجان آمده و رفته رفته زبان فارسی را به عقب رانده و جای آن را گرفته است مینویسد که به دنبال جنگ دندانقان من یادداشت کردم دندانقان شهری از نواحی نفاه... مرو شاه جان خراسان قدیم در ده فرسنگی مرو بوده در این محل جنگی میان تخرد سلجوگیان سلطان مسعود غزنوی در گرفته تاریخ این جنگ رمزان 431 هجی قمری بود خب می که به دنبال جنگ دندانگان که بین سلجوقیان و سلطان مسعود غزنوی اتفاق افتاد سلطان رزنوی شکست خورد و لذا ترکان با انبوهی عظیم در مناطق ایران، عراق سوریه، آسیای کوچک پراکنده شدند و دامنی کشورگوشای ایران تا ورای رو رود دانوب نیز کشیده شد آنگاه به کتاب ابن عسیر فرانس داده و می که در سال 345 قمری در این سال ده هزار خرگاه از ترکان به سرزمین مسلمانان و پیرامونهای کاشخر و بلاساغون تاخته تاراج کردندی کتابهای دیگری نیست در این موقع کسدی ارائه داده است بعد میاد میگه که ضمن مطالعات تاریخیش که پیش رفت میکنه متوجه میشه که زمانی که شاه, شاه اسماعیل سفری پایه سلسله سفری رو در تبریز برگزار کرد نخصده هفته قمری 1501 میلادی 880 هجری شمسی است میگه در این تاریخ زبان آذربایجان ترکی شده از طرف دیگه برمیگرده میگه منتها جد علای همین شاه اسماعیل که شیخ صفی بود و در سال 735 هجی قمری فوت کرده یعنی در حدود قرن 7 هجی این شخصیت زبانش میگه فارسی بود و به فارسی هم شعر گفته من تا میگه از تاریخ همین شیخ سفی تا رسیدن به جاه اسماعیل چه گذشته شیخ صفی فرسندش شیخ سطردین فرسندش شیخ خاجلی فرسند شیخ ابراهیم یا شیخ شاه سپس سلطان جونید و سپس سلطان هیدر و بعد از آن شاه اسماعیل که پایه سلسله صفوی را گذاشته در این تاریخ در این زمان اگه مرگ شیخ سفی رو در نظر بگیریم که و بوده و 907 هم بر قراری صفویه رو بگیریم حدود دو قرن میگذاره در این دو قرن میگه چه گذشته که زبان آزربایجان از فارسی برگشته و ترکی شده کسری علت ترکی شدن زبان آزربایجانی رو از این می که پس از فتح آزربایجان به وسیله شاه اسماعیل ایلات ترک وارد تبریز شدن و قبل از آن هم همین ایلات در آذربایجان زندگانه می کردن بنابراین رفته ربطه, ربطه زبان ترکی رو توسعه دادند در داخل آذربایجان. میگه ایلات اسمانی ایلات نوشته ایلات تور استاجلو، شاملو، تکلو، ورساق، روملو، زلخدر، افشارلو و غاجار در آذربایجان نوجه به گسترش بیشتر ترکی شدن خب یه به سلام توضیحی در اینجا بدم سلطان حیدر پدر شاه اسماعیل این تعداد ایلات ترک را که جزء پیروانش بود اومد یک کلاه سرخ رنگی به اینها دوخت و با شیارهای دوازده شیار در آن بالا رنگ قرمز و اسمشونو گذاشت خسن باش قزل در زبان ترکی به دو معناست هم به معنای تلاست و هم به معنای قرمز. خب بعد از اینکه این گروه شاه اسمایل رو به قدرت سانیدن تمام کارهای مملکت ایران رو از تبریز بگیر برو تا اونجا به صلاح سلسله صفبیه پراکنده بود قدرتش رو رسونده بود همه کارها در دست کارهای نظامی از بیشتر از همه کارهای اداری دست ایرانی بود تا موجه که نوشتم همه این کارها در دست ترک ها بودن و بنابراین میگه زبان ترکی شروع کرد در این تاریخ توسعه بیشتری پیدا کردن یکی دیگه از الالی که میگه موجب پیشرفت زبان ترکی در آزربایجان شده این است که کشور ایران به وسیله کشور همسایش کشور عثمانی بارها و بارها فتح شده یه توضیح بدم وقتی شاه اسماعیل سلسله سله رو برقرار کرد مذهب شیعه رو رسمیت داد در حالی که همسایه ایران کشور عثمانی مذهب سنت رو داشت و این تضاد به این دو مذهب که همیشه با هم از بد و اسلام در حال برخورد با همدیگر بودند موجب شد که بین کشور ایران و کشور عثمانی در گیری های پیش بیاد و چون کشور عثمانی قدرتش بیشتر از ایران بود بارها و بارها مناطقی از آزربایجان را فتح کرد و در آنجا نظامیانش نشستند یکی از این زمان دوره شاه ترحماس بود که به مدت 20 سال آزربایجان و تبریز شد تا در سال 1012 هجی قمری شاه عباس حمله کرد و اینا رو بیرون کرد و بنابراین در این تواریخ در اون مدتها که اینا می نشستن در داخل خاک آزربایجان زبان ترکی صحبت می و مردم هم بودند که ترکی رو یاد بکیرن این که زبان آزربایجان ترکی شده زبان قفقازیه مسلمان نشید همون قسمت شمال عرز که کسری از آن به اران نام میبره آن قسمت ها هم به زبان فارسی صحبت میکردن که به همین دلیل که در آزربایجان پیش در آن خطه هم در آن مناطق هم زبان عوض شد و ترکی گردید این خلاصه ای از کتاب زبان آذری است به دنبال انتشار این کتاب زبان آذری به اندازه علم، پژوهش علمی و دقیق بود که کتاب در مراکز علمی و اکادمیک اشتهار پیدا کرد و چاپ شد به دنبال آن کسوی را به عضویت انجمن آسیایی آسیایی همایونی برگزیدند. البته قبل از آن در بخش انگلیسی روزنامه تایمز عراق یک کتاب به زبان انگلیسی چاپ شده بود بنابراین مجامع علمی پی بردن به یک جنین کشف عظیمی که تکرار میکنم از نظر کسری و اون مجامع هستین لذا کسری را که به عنوان یک مشور شناخته شده مطرح شد به عضویت خودشون دروردن همطور که گفتم به عضویت انجمن آسیایی همایونی برگزیده شد همچنین به عضویت انجمن جغرافیای آسیایی در و نیز به عضویت انجمن آمریکایی پذیرایی شد خب بنده در اینجا فرصت سخنانم تمام شده و بخش چهاردهم گفتگو رو پایان میدم امیدوارم که یه خوبه بخش پانزدهم این گفتگوها باشید روزتون بخیر